جلسی چهارم از صدقه شکر کزان ارسیده در ساید بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین <تصحیح> و السلاة و السلام على سیدنا محمد و آله تاهلین در مواهی سقط <تصحیح> اموری شده در لسائل عمر اول این که مطابعت قط واجب به وجوب به خاطر که طریقیت قط به واقع ذاتی و نفسی قابل جعل نیست توسط اشاره نه اثباتن نه نفین طریقیت رو از نمیشه بگیریم نمیشه بهش طریقیت بدیم مراد از طریقیت هم همون حجیت و به خاطر اینکه طریقیت ذاتیه اطلاق حجیت بر این ممکن نیست مگر به تصامح و تجوز به خاطر اینکه حجیت در اصطلاح منطقی عبارت است از از حد وسط و چیزی که سبب علم میشه و علم خودش علم نه اینکه سبب علم ماشه عمر دوم اینه که چرا به قد حجت نمیشه اینه که عدل و امارات و قوائدش رو برای اینکه انسان علم به احکام پیدا کنه سادر کرده و صدور امارات و اصول و قوائد برای رسیدن به علم یعنی یک جنبه موسیلیت و طریقیت دارن ولی قدر خودش علم حساب میشه وجدان باطنیه بنابراین متمایز از امارات و اصول و قواعد ادعا از نظر منطقی به احتجاج اطلاق نمیشه متأخرین بر شیخ اصطلاح منطقی را کنار گذاشتن و برای قد در رابطه با این حکم موجیهت شیعی اصطلاح دیگری جعل کردند به نام منجزیت و معذریت این قایل هم به که به معنای معذریت و منجزیت نه به معنای حد وسط در قیاس و برهان بنابراین به همه اقسام که موجب تنجیز تکلیف و تعذیل از تکلیفه خوشت میشه من جمل قدر عمر سفرم در رابطه با تقصیر متعلقات قطعه متعلقات قط، تارتن احکامه و تارتن موضوعات احکام خودش تقسیم میشه به احکام تکلیفیه و احکام وضعیه احکام تکلیفیه عبارت است از همون پنج حکمی که مشهور قائلن و احکام وضعیه هر حکمی غیره احکام تکلیفیه رو بهش میگن احکام وضعی مثل نجاست، مثل شرطیت، مثل مانعیت، قاطعیت، ولایت، وکالت و همه اینها جزء احکام وضعی حساب میشه یعنی هر حکمی غیر اون احکام خمسه میشه حکم وضعی حالا به احکام وضعی آیا به چند حکم وضعیه مثل شرطیت و سببیت و مانیت همسالین ها یا برگشت همه احکام وضعیه به یک چیز کمون شرطیت باشه که قبلا تقویت کردیم علاق و به اثر ظاهر هر حکمی غیر اون احکام خمسه رو بهش میگن حکم وضعی این نسبت به احکام اگر متعلق علم باشه یعنی اگر قطع ما تعلق بگیره به وجوب یا تعلق بگیره به نجاست فرقی از این جهت نیست قسم دوم از متعلقات قط موضوعات یعنی موضوعات احکام موضوعات احکام مثل خمریت مثل منجسیت مثل هر چیزی که معروض احکام شهر باشه بهش میگن موضوعات احکام علم تارتن به احکام تعلق میگیره، تارتن به موضوعات تعلق میگیره و در تمام این موارد علم طریقیت داره یعنی کاشف از اون حکم ثابت واقعیه بنابر مذهب امامیه که قائلا به اینکه احکام ثابت هست برای موضوعات واقعی خودش که علم در همه این موارد چه به احکام تعلق بگیره و چه به موضوعات تعلق بگیره جنبه کاشفیت داره یه قسم دومی برای علم هست که استلاحا بهش میگن علم موضوعی علم موضوعی به این معنی که علم خودش موضوعه اینکه کاشف از یک حکمی از احکام شر باشه علم خودش موضوعیت داره و به عبارت فنیه در تمام مواردی که احکام ظاهریه ثابته علم موضوعیت داره در تمام موارد در تمام موارد که احکام ظاهریه ثابته علم موضوعیت داره یعنی احکام ثابته برا شخص عالم و الا در لوح محفوظ خبری از این حکم نیست یعنی اگر نوایت میگه کلوش این نزیف حتی تعلمان نهو قذار قذارت متقومه به علم انسانه در واقع قذارتی نیست در صورتی این قذارت ثابت میشه که ما علم پیدا کنیم. هر حکمی سبوتش در مرحله جعله قلوت به علم مکن باشه میشه حکم ظاهری و در این موارد میگن قد موضوعیه یعنی علم خودش موضوعیت داره اگر کسی علم پیدا کنه حکم ثابته اگر علم پیدا نکنه این حکم ثابت نیست مثلا نجاست لباس مسلی این نجاست لباس مسلی و مانعیتش و قاتعیتش همه اینها منوط به علم مکلفه اگر علم داشته باشه با نجاست نجاست ثابت اگر علم نداشته باشه نجاست ثابت نیست و همچنین مانعیتش از نماز اگر کسی علم داشته باشه مانعیت هم ثابت اگر علم نداشته باشه به نجاست لباس مانعیت ثابت نیست و همچنین قاتعیتش اگر در اصنای نماز کسی علم پیدا کرد به نجاست لباس قاطعیتش نسبت به نماز ثابت میشه ولی اگر کسی علم پیدا نگرد نماز رو خوند قاطعیت و و نجاست نسبت به این نمازی که خونده شده ثابت نیست اینو رو میگن قطع موضوعی که در مقابل قطع طریقی محضه چون علم در یک صورت دومی تقسیم میشه به پنج قسم که یک قسمش علم تاریخی محض همه ی علم هایی که کاشف از احکام واقعیه که در لوح محفوظ به حسب زم علماء ثابته و چهار قسمش متعلق به قطع طریق موضوعیه یعنی قطع موضوعی خودش تقسیم میشه به اقسام و انواعی داره و حالا این ظاهر بحثه یعنی ما یه موقع میگیم الخمرو حرام در موارد الخمر و حرام که از قضایه حقیقی شرعی هست علم طریقیت داره به خاطر علم شما منصد تکلیف دخیل در صبوت تکلیف نیست اگر علم دخیل در تنجز تکلیف باشه میشه علم طریقی محس ولی اگر بخواد علم واسطه در صبوت رکم باشه مثل الخمر المعلوم حرامون در این موارد میشه قطع موضوعی بنابراین در یک تقسیم ظاهری و خیلی سلیس علم تقسیم میشه به دو قسم علم طریقی و علم موضوعی در علم طریقی علم ما شرط تندجزه به خاطر ترتیبی که در مراتب احکام قائلن چون چهار مرتبه برای هر حکمی قائل شدن خصوصا بعد از صاحب کفایه که مرحله اول مرحله اختزایه که اون مساله و مفاسد واقعیه مقتضیه یک جعل حکمیه اینو میگن مرحله اختزا یعنی مساله و مفاسد واقعیه اختزایی این رو داره که بر طبق شاره حکمی رو جعل کنه مرحله دوم مرحله انشاء که شاره اراده میکنه و تبک اون و مفاظت واقعی حکمی رو جعل میکنه مرحله سوم مرحله فعلیتشه یعنی ابلاغ این حکمه این حکم علنی میشه ابلاغ میشه بعد از اینکه یعنی تنفیز میشه این حکم و مرحله چهارم تنجزه یعنی ما به اون حکم جعل شده اعلان شده و ابلاغ شده علم پیدا میکنیم این چهار مرحله از مراحل ترتبیه یک حکمه از مرحله اقتضا گرفته تا مرحله تنجز در تمام این موارد میگن علم علم تریقیه با چه علم داشته باشیم چه نداشته باشیم اون حکم ثابته. چون به مرحله قبل از تنجز رسیده و حکمی که به مرحله فعلیت رسیده باشه اون واجب و لیمتصاله. یعنی علاقه کل تقدیر ما باید اون امتصالش کنیم حالا اگر کسی علم پیدا نکنه بعد از وقت مثلا این پیدا کرده یا دیوتر این پیدا کرده اون تکلیف تغییر نمیکنه و به حال خودش باقیه بنابراین که علم شرط تند جز اون تکلیف باشه ولی در موارده که قطع موضوعیه خود علم موضوعیت داره یعنی اگر کسی علم پیدا کنه اون حکم ثابته علم پیدا نکنه اون حکم ثابت نیست که در تمام موارد احکام ظاهریه علم علم موضوعیه و احکام ظاهریه متقوّم به علم مکلفن اگر علم باشه اون حکم ثابته اگر علم نباشه ثابت نیست بنابراین در رابطه با احکام ظاهریه ما نباید قاعده به کشف خلاف بشیم به خاطر اینکه قبل چیزی نبوده ما علم پیدا کردیم در موارد احکام ظاهریه به اینکه این نماز آدم میخواد یا نمیخواد یا باطله یا صحیحه معنا نداره در حکمی که متقوّم به علم ما بوده و قبلا اصلا سبوتی نداشته قائل به کشف خلاف بشه. بیایم بگیم شما استصاب کردی و تمارت لباس رو بناه بر صحت نماز و تمامیتش و مجزی بودنش حالا بعدا معلوم شد که نه لباس نجس بوده اگر در وقت باشه باید عاده کنه این برخلاف این مبناس اگر در وقتم باشه عاده نمیخواد چرا به خاطر که حکم ظاهریه استصاب از موارد از هرشه وقتی حکمی متقبل به علم انسان باشه کشف خلاف درش معنا نداره بذار این یکی از معانیه یکی از معانیه طریقیت و موضوعیته که بگیم الخمرو حرام که علم میشه طریقی به خاطر اینکه کاشف شرط تندجزه و دخیل در ثبوت حکم نیست یعنی علم واسطه در ثبوت حکم حرمت برای خم نیست و این حکم واقعی در واقع ثابت ولی الخمر المعلوم حرام این علم واسطه در ثبوته اگر علم نباشه مجغلت خمر حرمت نداره خمری حرمت داره که معلوم باشه خمریتش اگر ما علم پیدا کنیم دو جزعه موضوع متشکل میشه و حکم برایش متردتر میشه چون مفروض که در این موارد علم موضوعی موضوع ما دیگه موضوع بسید نیست موضوع یا مرکبه یا مقیده این یکی از تفاصیلشه تفصیل دقیق هم داره که شاید الان ذهنیت اختیضا نکنه اینو بگیم جلساتی بگذره، تا بگیم که اون خیلی دقیق تر از اینه که علم موضوعی و علم طریقی یک تفسیر فنی تری داره این ظاهر قضیه است که بیایم بگیم حرام علم طریقی علم معلوم حرام میشه علم موضوعی این به حالت یک مثال خوبه و در عالم خیال چیز خوبیه ولی در عالم واقعی این طور نیست بایات ما ما خودمون این مثال رو ساختیم یه مثالی ساختیم که الخمر المعلوم حرام و امثال اینها نه برای تقریب به ذهن یعنی الخمر و حرام رو گرفتیم برای علم موضوعی علم طریقی الخمر المعلوم حرام بر علم موضوعی این تقریب به ذهن میکنه که ما ظاهراً فرقی بین علم طریقی و علم موضوعی رو تشخیص بدیم ولی نهایتش این مثال و معروف اینه که المثال یو قرب و من وجه و یو بعه دو من جهات یعنی اگه از یک جهت تقریب کنه به از جهات متعددی دور میکنه و خاطر ما تا آخر اصول بین قطعه تاریخی و قطعه موضوعی هیچ سمره مترتب نمیکنیم به خاطر دیگه تشخیص نمیدیم ما یه مثال یاد کردیم که اون مثال رو دیگه در روایات نمیبینیم یک روایتی باشه که یک حکمی واسطه خورده باشه در طرف توبش بر موضوعش نزاین رو در حدی یک مثال و شیع ظاهری آقاین بپذیرن که الخمر و حرام میشه قطع طریقی به خاطر کاشف از اون حکم واقعی ثابته بنابر مکتب مخته و امامی و یکی هم خمر معلوم حرام که قطعش موضوعیه جزء موضوعه در تمام موارده قطع موضوعی موضوع اماده بسید نیست موضوع یا مقیده یا مرکبه وقت به چه معناست داخل فرانتز آین تو ذهنشون بمونه اگر یک موضوعی به قطع مقید باشه یا مرکب باشه یعنی حکم تحبادی نیست هیچ موقع دیگه حکم تحبادی حساب نمیشه یعنی اگر یک حکمی منوت به علم مکلدت باشه اون حکم حکم تعبودی نیست نهایتش حکم شرعیه ولی حکم شرعیه غیر تعبودی نه تعبودی وقت فصل نافیه لآیات در دوره سابقه پنج شیست سال گفتیم و آخرش هم اده قلیلی ایمان آوردن یعنی مثل عزت نو نزدیک به هزار سال تبلیغ که از آخرش میگن این گشتمار ایمان آوردن به این مطالبی هم که ما دوره قبل گفتیم یا ایمان نیاوردن یا منکر شدن یا حرض نشد به خاطر اینکه که مقدماتش در ذهنها رسوخ نکرده بود و میگفتن گفتن این حرفای خلاف مشهوره و نمیشه چون در کتاب ها سوق و چیز دیگه است الان در کتاب ها میگه و حرام الخمر معلوم حرام در همین است یعنی بحث های منطقی نه های اصولی ولی میشه برای این‌ها ثمره مطالطلب کرد یعنی های درسی رو ما یک مقدمه‌ای برای رشد خودمون تلقی کنیم رسائل در حقیقت مقدمه‌ای برای اینکه ما بتونیم فکر کنیم بین این دو تا یعنی بین قطه موضوعی و قطه تاریخی برای اینکه به ذهنمون معنوس بشه همدان یه مثالی زدن اون مثال رو ما مقرب بدونیم و اون مبعداتش رو ازش بگیریم یعنی یک سمراتی برش مترتب میشه دنبال اون سمرات باشیم و خیلی از مباحث دقیق فقی در دوره سابق لفتیم الان تکرارش میکنیم ولی خیلی از سمرات دقیق فقی بر همین قطع موضوعی و قطع طریقی مترتب میشه مثلا آیا حکم مترتبه بر عنوانه یا مترتبه بر معنونه این متعلق به همین باب در باب قضا چرا علم قاضی حجیت نداره و اثبات علم حجیت برای علم قاضی تکلفه چرا؟ مرتبط به همین بحثه بنابراین یک بحث اصولی میتونه دخیل باشه در تمام ابواب فقیم و در اهم اقواب قضائی اگر کماه و حقه کسی هضمش کنه ولی اگر دنبال این باش می روزید چار پنج از اینا رو بخونیم و نمیدونم برنامه دیختم تا کجا باید بخونید و اینا رو رها کنید یعنی من تحجب میکنم از این که طلبه ها چرا به حیرت می چرا انسان راه مستقیم رو رها کنه و بیفته دنبال این که تا کجا گفتن بخونید مگه ما سواتمون تشخیص نداریم ولی تو یک سال نشد تو دو سال بخونید مگه قلعه های اورست و همسالونه میخواییم فتحش کنیم ما میخواییم بفهمیم طلبه که رسائل میخونه برای اجتحاده برای منبری شدن و برای مبلغ شدن و برای ترهیجدت و همسال اینها رسائل نیاز, نیاز نیست اشخاصی رسائل میخونن که میخوان مثل شیخ انساری فتوا بزن. نزا تعنی میخواد صبر میخواد حسنی میخواد این مطالب رو اینطور که میگیم آقای حفظش کنن یک تقسیم ظاهری در کلمات اومده بین علم طریقی و علم موضوعی الان همه اینا که ما در دوره سابر گفتیم ولو عهدی معیت نیست یعنی آقا هیچ ارتباطی نداره قطع موضوعی با قطع طریقی که ارتباطی با هم نداره یعنی این بحثایی که ما مترتب کردیم میگن چه ارتباطی داره مثلا ارتباطش به بحث عناوین محنونات میگن چه ارتباطی نداره ارتباطش به حجیت علم قاضی که گفته و اینکه واقعا مرتبطه چرا علم قاضی نباید حجیت باشه یا حجیت باشه دلیل چیه این مواحث قد مرتبطه به همین مسائل و ابحاثه که با تعمل آقای اینها رو بخوننم یا مثلا در اصول به مباحث وعلت که میرسن میگن آقا این فایده ای نداره از مباحث ادیم الفائده یا قلیل الفائده بذا بعضی ها خیلی مختصر میگذارن بعضی هم ازن حذفش کردن گفتن عمرمون رو در این چیزا تلف نکنیم با این که اگه نظر منو بخون مباحث وعلت همون مهمترین بحث اصولیه خاطر اینکه در مباحث وعلت ما موضوع رو میشناسیم خودش بحث موضوع شناسی تمام اختلافات فوقه ها تمام این تعلیقات بر اروه بر وسیله همه این کتاب ها به خاطر که موضوع تشخیص نمیدن یا در تشخیص موضوع اختلاف دارن و الا در وقت کسی اختلاف نمیکنه. مگر کسی پیدا میشه بگه خمر حرام نیست یا خمر نجس نیست چرا اختلاف میشه؟ به خاطر که موضوع مشخص نمیشه آیا خمری که اسکارش رو گرفتن؟ یا برای این شخص مسکر نیست یا منقلب شده یا استحاله شده باز اون حرمت رو داره یا نداره تمام فرواتی که مطرح میشه در اطراف این اختلاف به خاطر عدم تشخیص موضوعه از مباحث وز میخواد موضوع رو برای ما مشخص کنه که این که علمه سعید که در قرآن اومده فتیم ممو سعیدن این موضوع چیه یا مطلق وجهل عرضه یا خصوص ترابه کدومشه اگر موضوع رو تشخیص بدیم ما میتونیم خیلی راحت فتواه بدیم به این تیمم به مطلق وجهل عرض اشکالی نداره اگر تشخیص ندیم باید احتیاط کنیم بعضی سیزارو بگیم باشه بعضی سیزارو بگیم نباشه فنابراین قوام دوبه استنباد به تحلیل این مسائله اگر این چه میگن تشخیص موضوع برای فر پس فقیه چیکار باید بکنه؟ احکام که مشخصه این از تسامحات در تعبیرات دیگه تسامحات در تعبیراته پس فقیه باید چیکار کنه؟ احکام که مشخصه شما یک می بیار که از زمان شیخ مفید تا الان بگیم وقا این حکمشو نمیدونستن فقه ها در آوردن احکام معلومه موضوع مشخص نیست در باب تعارض روایات موضوع مشخص نیست، ولی حکم مشخصه. این روایت کدوم موضوع رو نفیش کرد؟ کدوم موضوع اثبات کرده؟ سمن الاذرته سحتون. یکی گفته لا و یکی گفته سحتونه. این کدوم به ما موضوع تشخیص نمیدیم موضوع تشخیص داده نمیشه ما هم که میگن تشخیص موضوعات به اولویت فرعی نیست، اینا اینا که حق مطلب رو ادا نکرده این مطلب رو ذکر میکنن یا در یه مقام دیگه میگن مثلا در کلمات نایینی هم هست در کلمات نایینی هست که اینکه آیا این آب مضاف هست یا مضاف نیست من چی میدونم نایینی نمیتونه بیافته دنبال مقلد برابینه آب مضاف شده یا نشده خودش تشخیص بدیم شده مکمشو داره نه اینا رو میگن اون احده بر احده فقیح نیست که آب مضاف هست یا نیست آیا الان شب شده یا نشده آیا گروب شده یا نشده اینا رو دارن میگن که فقیه هم مثل تو نایینی چی میدونه گروب شده یا نشده مگه تلسکوپ داره مگه علم نجوم کنده اونم مثل ما خیلی یه چیزای واقعی باید باشه دیگه اونم مثل ما ما یک لیمو به آب ریختن آیا مضاف شده یا نشده نایینی هم مثل من چی میدونه؟ آیا سیگار دودش قضا حساب میشه؟ شرب حساب میشه؟ چون عرب میگه شرب و توتون شرب حساب میشه یا نمیشه؟ هم مثل من چی میدونیم؟ پس نمیشه اینا رو اینطوری تلقی کنیم که تشخیص موضوعات به احده مکلف و فقی فقط احکام رو میگه خب چیزی که فقی نمیتون تشخیص بده مقلد از کجا تشخیص بده مرحالا واقعا یک مسائل اختلافی نه آیا غروب نماز واجب میشه یا مغرب بینجون یه دقیقه فاصله کدوم کدومشه وقتی ناینی تشخیص نمیده مقلد از کجا تشخیص بده از این حرفا نگفتنش اولاست که بیام بگیم تشخیص موضوعات به اوتای مکلده قواعد خاص خودشو داره قواعد خاص خودشه داره منهی طول مجموع فقيه موضوع رو باید مشخص کنه یعنی اون عذری که سمنش سبته کدوم عذره است اون عذری که ثمنش لا بر سبهی کدومشه موضوع رو باید تشخیص بدم ولی احکام واضحه ولی اگر اینطور باشه ما شانه فقیه رو از همه چیز خالی میکنیم و همه رو میدادیم گردن آره مثلا فقیه فقط میتونه بگه آقا اگر حلال دیده شده باشه ما اول ماه خب بس کجا ما ببینیم کی دیده کی باید ببینه آقا از کجا تشخیص بده یه چیزی که نوعا غیر مقدوره مفصند در این زمان ها به این سادگی نمیشه تشخیص بده تکلیف مکنلف به یک تکلیف غیر مقدوره یا دارای اصلاحرجه یا را تر مقدور باید خود فقیه تشخیص بده یعنی معلوم باشه این مال کدوم موضوعه این یک مطلب مطلب بعدی اینه که شار در رابطه با دیام امارات معتبره شاره در موارد دیام امارات معتبره احکام ظاهریه داره ولی در موارد قطع حکم ظاهری نداره یعنی در موارد قد ما نمیتونیم قائل به حکم ظاهری باشیم در موارد غث اصلاً حکم ظاهری ثابت نیست هر حکمی هر حکم واقعی بنابراین در موارد جهل مرکب که غث محقق شده بود ما غث داشتیم میگه در موارد جهل مرکب ما غث داشتیم چیزی نمیتونه قائل به کشف خلاف باشه و اینکه اعاده و عبادت یا امثال اینها به خاطر که در موارد قدر ما حکم ظاهری نداریم کشف خلاف معنا نداره و از هر مسادیقش موارد جهل مرکبه اگر شخص معتقد به خلاف واقع باشه و از روی اعتقاد عمل بکنه این عملش موضیه مشکلی نداره برای چه بگیم قائل به کشف خلاف بشیم و اعاده و امثال اینا. ولی در موارد اما امارات معتبری شرعیه چون احکام ظاهریه هست احکام ظاهریه هست و این امارات بر طبق معدیات جل شده احتمال کشف خلاف درش هست میتونیم قائل به عدم ایزا بشیم در موارد تخلیف یعنیم یه مطلب مهمیه که مترطب میشه بر فرق بین قط و سایر ادله معتبره مثل امارات و قوائد و اصولی که معتبرن والحاصل. والحاصل ان القطر قیل و حاصل وال حاصل هم مکان ال قطع و وججهتنقه یا معقولول معقول نیست ووجیت مند نداره ن ن وجه مایو که وال قط فلا وتغ الان نفسه بعد بخوادیم حجیت سبب علمه به خود علم دیگه گفته نمیشه حاضا کلوه به نسبت اله و حکم متعلق القط یعنی قطعه به خمریت به نجاست به وجوب به قرمت به تعلق گرفته نسبت به اینها داریم میگیم که حجیت نداره و اول امر المقتوبه متعلق قطعه همون امر مقتومه که نسبت به نسبت بهها قط تریقی حساب میشه و به قط تریقی خودیت طلاق نمیشه از حیث اصطلاح منط و اما به نسبت اللهک من آخر وجووزیگون قط و معخوزن ال نحول موضوعه ویقال ان شيء المعلوم به وصل فکرون معلون مکمگذا یعنی خمر اگر علم به خمریتش حاصل بشه حرامه و اگر علم به خمریتش حاصل نشه حرمت نداره و این ازین فلعلم و یکون وسطن لسبوت زالکالحکم لحاظ الموضوع مرکب اول مقید علم واسطه در سبوته خودشت به چی میگن؟ به واسطه در اثبات میگن این هم که واسطه در ثبوته بنابراین به این هم نباید حجت گفته بشه حالا تساموهن تعبیر مصنف اینی فعل علم و واسطتون پس ثبوت علم واسطه در ثبوت یعنی چی؟ یعنی علمی که خودش موضوعیت داره علم مکلف موضوعیت داره نه واقع علم شما به نجاست مانعیت داره نه نجاست علم شما به نجاست قاطیت داره نه نجاست تمام محور علم شماست اگر علم باشه مانیت از قاطعیت است اگر علم نباشه مانیت و قاطعیت در کار نیست تمام محور علم انسانه فرق علم و یکون و سطن لصبوت ذالک الحکم بخاطی که الخمر معلوم حرامون اون حکم ترتب شده برخمر به واسطه این المعلومی که قید موضوعه و این لم یطلق علیه الحجه این از این به المراد به باب تفیبا بالعدل ماکان واسطه تنفل ای اثبات این تصامه در تحبیلات شیخنساریه علم واسطه در اثبات، چت واسطه در اثبات علم نمیتونه واسطه در اثبات باشه چون خود علم علمه دیگه یه ثابت شده است از المراد به حجیت حجاب العدله و المنطق با واسطه تند في اثبات یعنی واسطاً لثبوت احکام متعلق هی شرعاً لا لحکم آخر. دیگه به خاطر واسطه در ثبوت باشه چی نه حجت واسطه در اثبات رو میگن من علم پیدا کردم به یک روایتی که گفته بود الخمرو حرام در این موارد علم واسطه در اثبات بهش حجت گفته میشه ولی اگه بخواد واسطه در ثبوت باشه مثل الخمرو معلوم حرام این حجت گفته نمیشه چون واسطه در ثبوته کمایزارت تبشاره اول حرمته علال موضوع المرکب چاره حرمت رو مترتب کرده بر یک موضوع مرکب از خمر و علم. ال الخمر معلوم كونها خمر المعلوم که اونها خمرن. یعنی بر یک موضوع مرکبی که مرکب از خمر و علم ماست دو تاش باید با هم باش لا على نفس الخمر و کترب تو به وجوب اطاعت عقلا عله حکم معلوم الوجوب اطاعت واجب عقلا در چه مواردی؟ در مواردی ما علم پیدا کنیم به یک حکمی اطاعت حکم واقعی واجب نیست اطاعت حکم معلوم واجبه اگر علم به یک حکم پیدا بشه اطاعتش واجب ولی اطاعت از احکام واقعی واجب نیست نل واجب الواجب و بالجمله فلقط او قد یکون تریخن للحکم و کاشفن انهو مقد یکون معخوزن فی موضوع الحق در موضوعات مقاییته و مرکبه که گفتیم یکی از سمرات مهم میشینه که در این موارد دیگه حق حق به تعبودی نیست بعضی از به احکام تقسیم میشه به سبست احکام عقیه احکام اقلایه و احکام شرعیه احکام شرعی هم تقسیل میشه به دو قسم، بعضی از احکام احکام شرعی تعبدیه این تعبد محضه بعضی از چیزها احکام شرعی غیر تعبدیه احکام شرعی تعبدی محض مثل جهر در سلات تعبد محضه به ذهن هیچ بنی بشری نمیرس یا عدد رکعات نماز. از احکام تعبودی من یا قرمت رو با تعبود به بخواد این برخلاف ازهان عرفه در این موارد میان احکام شرعیه تعبودی و اگه بخواد موضوع مرکب باشه و مقاید باشه یقیناً حکم تعبودی درش منتفیه احکام تابقودی یه سبوت واقعی داره نمیتونه علم موضوعی باشه بگه شما علم پیدا کردی به حرمت قرض قرض حرامه اگه علم پیدا نکنه قرض حلاله با اینکه قرض در واقع حرامه اگر کسی بعد از صد سال بفهمه که یک معامله ربوی داشته تمام انوالی که داره یا حرامه یا مختلط به حرام تمام انوالش به خاطر اینکه حرمتش واقعی بوده. حرمت ظاهری نبوده بیام بگیم نمیدونستیم. شخصی نمیدونه باید خمس بده، خمس نداده 5 سال خمس نداده. اینها از احکام واقعیه، اینا مراتب علم میشه. بنابر این همه هم مالش باید بده، نه اینکه بگیم یک پنجم بده یا چیزی نده یا مصالحه کنیم. واقعیش این احکام تعبدی ثبوت واقعی داره. حالا اونهایی که این بحثا رو در اعدامش بیان یقینا سلسلوار میاد اینا اینه دانه های میمونه و اونا هم که بحث های دیگه رفتن همین مقدار شبه در ذهن دیگه <تصفح> نه. نه نه گفت اینا مثال ما داریم میسازیم دیگه مثال واقعی نیستن که مثال واقعی نیست سعی نکنیم مطالبی رو با مثال های ساختگی به ذهن افراد فخریب کنیم اون بعدن تالی فاسد داره مثال ها باید واقعی باشه مثال واقعی نسبت به حکم تحبوتی مثلا ما ربا رو داریم مثال میزنیم زنا رو داریم مثال میزنیم غیر قابل ترخیصن و آثار که برش متدفد میشه مطلبی از دیروز مونده تا یادم نرفته وقت داره تمام میشه اینه که ما گفتیم قط آیا حجیتش ذاتی هست یا ذاتی نیست مشهور قایلن بگه حجیت قط ذاتیه. دیروز گفتیم ذاتی نیست و این نیاز به تقریب داره تقریبش متوقف سه مقدم است مقدمه ای اول اینی که هر قطعی سه خصوصیت درش هست خصوصیت اول کاشفیت غیر قابل انکاری که هر قطی کاشفه دوم محرکیتش اینم غیر قابل انکاره و سومین خصوصیت بوتیتش یعنی از احکام و خصایصش اولی گفتیم ذاتی دومی اختزائیه سومی اعتباریه اما اولی ذاتیه به خاطر اینکه که به ما و قطعون کاشفون مترفه بر ذات قطعه هر قطعی کاشفیت از مقتوع خودش رو داره اعلام که اومدن گفتن بعضی از موارد کاشفیتینا نداره یا به دیگه مطرح کردن قطعو نسبت به واقع میگیرن ما در علم اصول یقین و قطعی که میخوان غیر از یقینی که ملاصدرا صدرا برا فلسفش میخواد اون قط قط منطقیه که ناظر به واقع اگر تخطی کنه درست نیست قطع منطقی بهش میگن قط ریاضی بهش میگن قطعی ای که واقع نفس العمر فلسفه رو نشون میده اون اصلا محل بحث ما نیست فوقه ها با قطع منطقی هیچ سر کاری ندارن ما در لوح محفوظ و در نمیدانم عالم آخرت و در از اصلا کاری نداریم ما برای دنیای خودمون داریم تلاش میکنیم وظیفه یک مکلف در حیات دنیاویش چیه؟ ما کاری به واقع نداریم بنابراین قطعی که برای مکلف مد نظره قطع اصولیه قطع اصولی یعنی قطعی که ناظر به مقتوعشه ما قطع به خمریت پیدا کردیم نه به خمر واقعی هر قطعی که باشه از مختوبشه اگر معنای قطع در حیطه اصول این باشه و فقها مراد از قطعشون همین باشه موارد جهل مرکب رو هم میگیره موارد اعتقاد به خلاف رو هم میگیره موارد علم را هم میگیره موارد یقین رو هم میگیره یعنی تمام این موارد مشمول این قطع اصولیه یعنی شخص جاهل مرکب قاطع پس چرا احکام قطع برش مترسته نمیشه در فقر؟ یکی از ایراداته شخص جاهل مرکب قاطع شخص معتقده به خلاف شخص معتقده به خلاف جهت قبله بوده حالا علال قاعده 180 این مرتر خونده. معتقد بوده که این مریه برای چی عاده کنه؟ علالقائده یاد نمیخواد. ظهور بله. اشغال نداره امر یعنی چی؟ اینکه برای این چی بخواد؟ مگه ما بیکاریم دوباره بخونیم؟ و هر چیز ممکن مگه اتفاقم میفته؟ اینو فقط تو مقام احساس و عواطف داره ثبوتا یعنی عقلا؟ و وا عقلا ما کاری به عقل نداری. اصلا کاری به عقل نداریم کلاس ما اصلا کاری به عقل نداره. قبلا هم گفتیم ما کاری به عقل ند ما فلسفه که نمیگیم ما داریم اصول میگیم اصولی اصلا کاری به عقل نداره. ابدا یعنی ممکن از نظر عقلی و ثبوتی اینمال فلسفه است ولی حالا ممکن آره شعر از ما بخواد ولی هر ممکن اتفاق میفته نه ممکن از ما اعادهش بخواد ولی آیا خواسته نه از اینا رو بحث نمی‌کنیم ما میخوایم بگیم که شخص که جهت قبله رو معتقده به خلافش بوده هشتاد درجه یعنی علالقائده برای چی عاده کنه پس علالقایده نمازش درسته شخص قاطع و قطع بچیت داره بچیت منجزیت معذریته برای چی عاده کنه؟ شخص معتقد بوده به این که لباسش پاکه برای چی عاده کنه در وقت؟ عاده نمیخواد حالا قبله عاده میخواد به خاطر لاتات ولی لباس نجیس دیگه عاده نمیخواد ولو در وقت باشه شخص نمازش تمام شد بعدا دید اصلا لباس رو کل نزدن نجیس کرده خوشکش کرده بعد نماز خونده اشکالی نداره ولی برای نماز دوم لباس رو باید عوض کنی به خاطر اونجا که قاعده لاطاعت نداری شخص قاطع اصولی شامل میشه جاهل مرکب رو شخص معتقد به خلاف رو شخصی که عالم بوده و شخصی که یقین داشته و بین یقین و علمم فرد قبلا گفتیم فرد انشاال و بیشتر توضیح میدیم سه تا خصوصیت که بالا قط گفتیم آقایون تأمل کنن کن و این نقطه که الان میخوام بگم. القط او به ماه و قطون تااشکن. القط او به ماه و و محرز کن. کنقط او به ماه و و موسلن ما سه تا خصوصیت رو اضافه کردیم یکی ذات نسبت به کاشفیت یکی داعویت نسبت به محرکیت و یکی موسیلیت نسبت به حجیت یعنی القطع به ماهو و قطعون میشه حجت و کاشفون او به ماهو و دائن میشه محرک و او به ماهو و موسیلون میشه حجت حالا این سه تا رو فردن بحث می کنیم بلخم داریم البته آقای که اشکالاتی به ذهنشون میرسه مانه نداره ولی نوعاً اشکالات نمیتونه وارد باشه اشکالات نوعاً نمیتونه وارد باشه به خاطر اینکه اشکال سبوتی داره